جلسه 51 قواهد فقه و سیاسم 18 اردیبهشت 1401 گروه فقه و سیاسم محسد آموزشوالی امام رزا علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علیه سیدنا و نبی نعب القاسم محمد و علیه اهل بیت تاهرین المعصومین سیم بقیت الله في العرضین روحی و ارباح العالمین الله الفدا با تأکل بر خدای متعال و توسل به پیامبر گرامی و اهل بیت ادخار بحث اون رو شروع میکنیم قبلا ما بعضی از مواردی رو که مطرح کردیم عنوان قواعد ترجیح یک مسئلت رتبی رو بیان کردیم اشاره وارگویا مسالله نوعی رو هم معرفی کردیم که میشه امود اونها تحمل بیشتری ما داشته باشیم. مسله رتبی رو که ما عرض کردیم یک فراز و فرود خاص خودش رو داره. تنوع خاص خودش رو داره و از به عنوان رتبه یکی بر دیگری مقدم بود. تقدیم مصلحت در واقع خاصی که ما به عنوان انواع مطرح میکنیم در این مقوله زیل که از رتبه ها مطرح میشه یکی از مبارد تقدیم مصلحت دین در مصلحت نفس یعنی در در هر رتبه ای از رتبه های مختلف ضروریات در واقع مساله ضروری حاجی و تحسینی میتوان انواع مختلفی رو از مساله و مفاسد مرد نظر قادر حالا اینجا بحثیم با مساله خب این مساله رتبه اونها ممکنه یکی باشه در هر رتبه ای از رتبه ها انواع مختلفی میشه شناسایی کرد در این انواع از حیث رتبه بر یک دیگر تقدم ندارند اما از حیث نوع تفاوت دارند از اینو باید چه کار کنیم؟ باید بریم سراغ این مسئله بررسی کنیم باید دید که کدام یک از انواع مختلف تقدم بر دیگر انواع دارند خب یکی از موارد مهم مسئلات دینه یکیش مسئلات نفسه مسئلات دین نوع مستقلی از مصلحت است که هم در واقع ما در رتبه ضروریات داریم. این مصلحات نوع مستقلی از مصلحت است که در حس رتبه در حس رتبه ضروریات حاجیات و تحسینیات و نیز در مکملات هر یکی از اونها قابل شناسایی است، قابل خلاصه طرح و رویت. آه خب. به چیه مصلحت دین ناظر به سیانت از اصل دین اصل و کیفیت تبیین دین هست و کیفیت تعقب اونه خب شما میگید مثلا این حکم الهی چرا جعل شده در واقع اینجا رصد میکنید اگر این مصلحت در مقام جعل و ثبوت لحاظ شود مقوله است که ناظر به جعل احکام بگیم حالا اون مقوله از سنخ علت یا حکمتی است که ناظر به جعل احکام برای حفظ خود دین و آموزهای آن و تحقق تحقق پذیری اون خلاصه خواهد بود پس این در مقام جل میتوانه خلاصه لحاظ بشه اگر این مسلحت در مقام امتصال لحاظ شود ناظر به سیانت از خلاصه تحقق این موارده یعنی اونجا جل میشه ناظر به جل احکام برای حفظ دینه اینجا ناظر به سیانت از دین و آموزه‌های آن و اعمال دین تعقب‌پذیری سازی اون در مقام امتصال خواهد بود خب پس بستگی داره ما کجا لحاظش رو کنیم اما مصلحت دین روشنه خب از جهت مفهومی آیا می توانیم مطرح کنیم که این دایرهش محدوده خیر مصلحت دین میتواند در واقع ناظر به حفظ اولیای دین و بگیم اولیا و پیشوایان دین هم پیشوان دینی هم باشد چرا زیرا که از این جهت که سیانت از اونها به سیانت از دین باز میگردد چونان که به طور نمونه برای در رس اون حفظ پیامبران پیامبران و اوسیای آنان خلاصه به مسابه حفظ دینه بلکه خلاصه مخالفان دین بیش از اون که در قلب بگیم در مواردی بیش از اون که با آموزه ها تقابل داشته باشند با این پیشوایان خلاصه سر ستیز دارند. بنابراین این مسلحت مسلحت خاص خودی خو خاصی و همیت داره بنابراین مسلحت دین یک مقوله پیچیده نیست اما خلاصه مسادی زیادی داره به رغم در واقع روشنی این مفهوم می توان خلاصه مسادات مسادیق مختلفی برای سراغ گرفت و تنوعش رو لحاظ کرد تنوع مسادیق هرز دین و بگیم مصلحت دین مسادیق مصلحت دین خلاصه باعث میشه که در برخی از موارد مصلحت حفظ دین ابهام مصداقی پیدا کنه خب مثلا شما الان پیامبر حفظ پیامبر واجبه بنده شما باید در از جان پیامبر سیانت کنید اما به طور نمونه موارد مشکل آفرین آیا هر شخصیت روحانی و عالم یا طالب بزارهای دینی خلاصه دروس دینی می خلاصه سیانت از جان خود رو بر سیانت از جان دیگر افراد مقدم بدارد؟ خب این یک سوالیه خب البته این مقوله بحث مستقلیست به رغم اینکه که خلاصه حفظ مستقله اما یه جایی با اون مورد بعدی گره میخوره خب ما این رو باید تعمل کنیم پس یه مقوله اینجا حفظ نقصه حفظ محترم محترمه حفظ نفس مفهوم روشنی داره اما مسادیق و اون تنبه دارن بنابراین از این رو باید, باید نفس خلاص محترم باید دایرش معلوم بشه دایره مستاقی و تعریف هم تعریف تعریف نفس محترم و هم دایره مستاقی اون خلاصه روشن بشه معمولاً تعبیر نفس محترم اینجا شاید مطرح نشه خب حفظ نفس روشنه اما خلاصه هر نفسی آیا محترمه یا نه خب مصادیقش تن... تنوع داره برخی از نفوس مسلمان مؤمن متدینند و از احترام دینی خاصی برخوردارند اما برخی موارد نه شما میگه فلانه کافره برخی مصادیق خلاصه نفس نفر و نفوس از دمره افراد مشرک کافر یا حتی بگیم مسلمانان واجب القتل به شمار می آیند مسلمانه ولی خب بنابراین این تنوع خلاصه قابل تأمله. باید ما دایره تعریف نفس محترم دایره مصاطی روشن بشه. در اما فیل جمله قاضی داریم. خب حالا اگر مسئله دوم رو ما اون مسئله قبل رو با اینجا گره بزنیم خب میتونه این دایره مصداقی مشکل ها بشه یعنی اون نکته که ارز کردیم برخی از حفظ جان ها حفظ نفوس از دایره حفظ دین تلقی میشه از این جهت برخی از مسادق حفظ جان حفظ نفس میتوانه مصداق حفظ خلاصه از مسادیق حفظ نص هم خلاصه شمارده بشند اون بنابراین یه حس دومی پیدا میکنه. به تعبیر دیگه برخی از مسادیق می توانند دو حیثیت داشته باشند خب برای مفهوم اصلش روشنه اما دایره خلاصه تنوع داره خب اینجا مفاد قاعده چیه؟ مفاد قاعده اینه که حفظه خلاصه قاعده تبیر تر... اون چیه؟ تقدیمه مسلحت دین بر مسلحت نفس اینجا الان مفهوم این مفهوم روشنیه ناظر به چیه ناظر به رفع تضاحم در مواردی است که مسرعایت و سیانت مصلحت دین با رعایت و سیانت مصلحت نفس یا به تعبیر دیگه جان خلاصه تنظامون پیدا کردن این مورد خلاصه بینا گره میخوره خب محتوا چی میگه؟ در مواردی, که در مواردی که مسلحت دین به صورت متمایزی از مسلحت نفس تاقق پیدا میکنه تعقب پذیره باید مصلحت دین بر مصلحت نفس مقدم بشه خب چرا این نیاز به تحلیل داره اونجاهایی که با هم مصداق مشترک پیدا میکنن چی در مواردی که مسلحت نفس از مصادیق مصادیق بگیم سیانت از سیانت از مصلحت نفس از مصادیق سیانت از مسلحت دین خواهد بود باید به صورت مستقلی خلاصه لحاظ بشه اون یه مقوله دیگه است به چه معنا؟ به این معنا که دو مسلحت در یک جانب قرار گرفتند او. پس در اینجا این قاعده متزمن چیالاته ما بحث رو مفهوم سیانت که مطرح کردیم تأمین هست فقط حالا سیانت نیست بنابراین رعایت سیانت بگیم تأمین حالا رعایت یه جوری باز به معنای هلاسه صیانت هم حساب میشه بگیم تأمین رعایت اه، یا صیانت مصلحت نفس با اون موارد دیگه خلاصه تمام پیدا کرده بنابراین این این قاعده متضمن چند نوع یا چند م... مصداقه یا چند گونه از تزانه هم یه شک نیست یکی تزانه میان تامین مصلحت دین با تامین مصلحت نفس دوم تزانه میان تامین مصلحت دین با حالا مفهوم رعایت رو اگر با سیانت یکی بگیریم خب اینجا یه مورد رو باید با هم بگیریم اگر مفهوم رعایت رو جدا از سیانت بگیریم که شاید بهتر باشه میتوان ما مفهوم مستقل باشه پس اینا هم رو بیشتر میکنم با رعایت مسلحت نفس مورد سوم تضاهم میان تأمین مسلحت دین با سیانت از مصلحت نفس پس اونجا شکل ستا شد یه طرف تأمین بود طرف دوم تأمین رعایت مسلحت خب دوباره بیایم به جای تأمین رعایت میذاریم تضاهم میان رعایت مصلحت دین با تأمین مصلحت نفس مورد بعدی تضاحم میان رعایت مصلحت دین با رعایت مصلحت نفس مگر اینکه این دو رو برای رعایت و سیانت رو متفاوت بگیریم مساق بعدی تضاحم میان رعایت مصلحت دین با سیانت از مصلحت نفس این شش مورد مورد هفتم تضاحم میان سیانت از مصلحت دین با تعمین مصلحت نفس مورد هشتم تضاحم میان سیانت از مصلحت دین با رعایت مصلحت نفس نهم تضاحم میان از مصلحت دین با سیانت از مصلحت نفس پس نه مورد اگر این سه تا مفهوم رو ما جدا کنیم تامین رعایت و خلاصه سیانت بنابراین با توجه به تفاوت مفهومی و عینی سه مفهومه استدامه سه مقوله تأمین رعایت و سیانت می توان گفت که خلاصه این قاعده متضمن گونه از تضاحمه خب البته در لابلای بحث ها معمولا اینها رو من ندیدم تفکیک کنن اما به نظر میرسه که اینها خلاس قابل تفکیق هستند و این قاعده همه اینها رو داره چه کار میکنه حکمش رو معلوم میکنه قاعده مزبور در واقع به صورت متلق متضمن ترجیح مسلحت دین بر مسلحت نفس خواهد بود طبیعتا اگر ما بحث دفع مفسده هم اصاب کنیم چون این دستبندی هایی توانیم داشته باشیم پس مفاد قاعده داره چی میگه؟ میگه که یک طرف این مبوله داره اینجا ما یک پیشفرضی داریم پیشفرض قاعده چیه؟ این که قاعده در واقع بگیم قاعده مزبور که بود تقدیم مسلحت دین بر مسلحت چی؟ بر مسلحت نفس این قاعده پیشفرض چینه که در واقع همه موارد همه موارد این دو مصلحت قابل مقایسه با هم هستند و امکان ترجیح یکی بر دیگری وجود دارد خب این قاعده پیش‌فرض‌های مختلفی میتونه داشته باشه خب، یکی از موارد مهم اینه خب یکیش چیه این که این همه اینا با هم قابل مقایسه هستن و در و امکان ترجیح یکی بر دیگری هم وجود داره توانید اینو پیش‌فرض دوم هم حساب کنیم امکان ترجیح مسلحت دین بر مسلحت نفس خلاصه وجود داره و لزوما اینها یکی هم نیستن ظهور این قاعد خلاصه بیانگر این است که این دو مورد مرز کاملا، متمایز و شفافی دارند اما میتوان خلاسه مسادیق مشترک میان اونها هم پیدا کرد چرا که مثلا حفظ جان پیامبران و عوضی های اونها میتوانه خلاسه مصدا از صداق مشترک برای این دو مفهوم ایجاد کنیم. بنابراین، باید ما بحث پیشور روورن در جایی که خلاصه این دوتا تظاممون قابل این مفهوم قابل تفیک باشند. بنابراین، پیشفرز اول که گفتیم قابل مقایسه هستن این است که همه موارد این دو مثلحت به صورت مستقل و قابل مقایسه با هم قلصه تصویر شدن یعنی هم مستقلن هم قابل قلصه جدای. و در نتیجه شما اگه بخوید ترجیحی درست کنید اینجا این ظهور به هر حال کمک میکنه شما امکانه خلاص ترجیح در اینجا وجود داره نو پیش فرض چهارم اینه که ترجیح مصلحت دین بر مصلحت نفس به صورت مطلق قابل خلاصه تر شده در ظهور این قاعده چون این چیزی رو نشان میده که این به صورت مطلقه اما شما باید تحقیق کنید که بین مساده به دین رعایت دین مساله مربوطه به دین آیا یک گونه است مساله؟ بله. قابل دین چگونه است از زرور این قاعده و اینه که مسال مسلحت دین خلاصه قابلیت خاصی داره و اون قابلیت چیه اینه که در مصادیق متنظم یک شکل یک معنا یک فرم ظهور پیدا کنه مصلحت دین خلاصه در همه مساطیح اون اه اه به صورت یکسان و دارای دکسان لحاظ شده و دارای حکم واحدند خب اما پیچیدگی لازم نشد مراد چیه ببینید مثلا الان حفظ نمازت برقراری نماز جماعت اینم یک نوع حسب دینه خب بنابراین اینطوری باید بگیم با تمد تر... با توجه به تنوع مصداقیه و مصادیق مصلحت دین نمیتوان خلاصه اینا رو نادیده گرفت لحاظ تنوع مسادیق در مسلحت دین اهمیت داره و ما باید اونها رو لحاظ بکنیم تا حکم روشنی پیدا کنیم همطور بیدیم ها دین مقدمه تنوع مسادیق در مقوله دین بگونه است که لحاظ لازمه. مثلا به طور نمونه برخی موارد مستحبند، برخی از مس... در واقع مسادیق مربوطه به مصلحت دین از جمله مستحباتند و برخی از واجبات تلقی میشند. برخی همچین. برخی هم برخی از اونها هم اصلا از اوجب از اوجب واجبات تلقی میشن آن از قرآن خب اینجا خلاصه سیانت از سیانت از تحریف قرآن از اوجب واجبات اما مثلا برقراری نماز جماعت از مستبات چیه؟ مؤکده خب که شما مثلا الان الان در زندگی شخصی شما نماز جماعت دارید اما یه قراری هم دارید قرار بندی خودا قول باشد قول گرفته شما سر ساعت برید خب حالا این یه طرفش افعال دیگه شد بحث ما نفس خب من آیا نماز جماعت بخوانم یا حفظ نفس کنم بنابراین در تضامم میان حفظ نماز جماعت مستحب با حفظ نفس میتوان گفت که حفظ نفس مقدمه بنابراین باید اون بحث مفهومی ما چکار کنیم یه مقداری دایره رو محدودتر بگیریم بنابراین با توجه به فرس ها خلاصه ما باید دایله رو محدودتر لحاظ بکنیم خلاصه تفاوت ظهور ابتدایی این قاده این بود در همه مصادیق خلاصه یکسانند. سانند بنابراین شما نباید استیحاش بکنید در نتیجه پیش فرض مذبوچیه این که برخی از مسادق حفظ دین یا بایگه مسلحت دین توانند از بحث خارج باشند در واقع یه معنای خاص به تعبیر دیگه دایره دایره محدود حالا از ظهور اولیه این او مد نظر است بنابراین همه مردم می‌فرمانم می‌دونه که دا نماز مستحب خود دین گفته مستحب اون واجبه حفظ نفس محترمه واجبه خب یه پیشفرض دیگه هم چیه این بحثی که در واقع این ها تحلیل محتوای قاعده است دیگه مطاق یه مقداری از ظهوراتی که داره و بیشفرزش ما داری استفاده می اینکه نفوسه نفوس خلاصه حفظ دین داشت این طرف هم تنوع نفوس محترمه هم در این قاعده به صورت اجمالی لحاظ شده حالا این تعبیر برای بحث قبلی هم میشه بگیم به تعبیر دیگه دایره محدودتری از ذور اولین این قاعده مد نظر است و ما اینطوری میشه بگیم اون بحث قبلی جمله آخری که عرض کردیم اینکه به تعبیر دیگه تقدیم مصلحت دین بر مصلحت نفس به صورت اجمالی لحاظ شده و لزوما همه مسادیق مسلحت دین بر مصلحت نفس تقدم ندارند حالا از این برشم توانیم بگیم که نفوس محترم هم همین طورن چرا در واقع اولا گفته تقدیم نفس و پس نفوس تنوع دارند تنوع نفوس نفوس هم در این قاعده اجمالیه چرا که برخی از نفوس محترمان برخی از اونها از احترام شرعی برخوردار نیستند چون که خلاصه تفاوت میتوان در واقع نفوس محترم رو هم دارای درجات مختلفی از احترام شرعی تصویر کرد این هم محتضی چیه؟ محتضی لحاظ تفاوت اونها خلاصه با یکی در مقام تزاهم خواهد بود حالا از اون طرف نفوس محترم محدود به انسان هم نیست خب بلکه در واقع نفوس محترم شامل انسان ها و نفوس غیر انسانی هم هست باقی از مفصوص و حیوانات رو لحاظ کرد همینطوره نیست خودش برای تفاوتی داره خب این تحلیل در واقع دو طرف بود مفهوم مصلحت نفس مصلحت دین یه قسمتی که اشاره کردم به نظر جای تأمل و قرنندگی داره اینکه اون تفاوت افراد مصلحت دین اون رو بعد اون رو لحاظ کرد در واقع اون تفاوت مسائل دین خیلی مهمه در نتیجه برخی از اونا ممکنه خارج از بحث باشه برخش هم اهمیت داره در مجموع خلاصه ما باید تفاوت در مجموع لحاظ تنوع مصداقی در مسادیق مصلحت دین اهمیت فراوان داره به طور نمونه ما مثلا اجرا بکنیم آقا با تیم رفتن زکات بگیرن خب به طور نمونه جمعآوری زکات از مقوله های از افعال مهم مدنی اما و جزشی میشه دینیست و مسلحت دین تلقی میشه چرا؟ چون که دین رون احتمام داره از آم در واقع آموزه های اصلی و مهم دینیست چنان که تأثیرهای دیگر داره چنان که تأثیر مهمی در سیانت از دین و دیگر آموزه‌های دینی داره بگیم سیانت از زندگی زندگی مسلمانان داره خب همینطور که سیانت از آموزه‌های دینی میکنه خب تاثیر زیادی داره اما این عمر نمیتوانه مجوزی برای به صورت ابتدایی یا به صورت ثانوی کار نداره. این ام به صورت ابتدایی نمی‌تونه حداقل بگید خلاص حداقل نمیتونه مجوزی برای قتل افرادی باشه که از دادن زکات امتناع میکنند خب ما دیدیم در صدر اسلام چون اتفاقی افتاد خب چون که اون گزاره به هر حال افراد مشهوری که در صدر اسلام بودند خلاصه ارتکاب به این امر محرمی از طرف برخی از صحابه تد مجموز شرعی نداشت این, است. این هم حفظ دینه سیانت از دینه مثلت دینه جمع برای زکات سر جای خودش اما خلاصه نمی‌توان مجموزی برای این افرادی باشه که امتناع میکنن بنابراین ما خلاصه همه مسادیق رو در نظر نداریم بعضی از این موارد خارج از بحث ما هستند. در نتیجه شما میشه این جنبندی رو داشته باشد که یک اجمالی مصادق مختلفی اون قسمت برال بحث های مدهوید به سیانت از شخصیت های دینی هم اهمیت کلیدی داره الحمدوالله <commissions> <مس overt Kenneth> رب العالمین